جن خودخواه نوشته یاری ریچارد داکینز. پی پینوشت های فصل ششم چیستی جن توضیح این بارد من نمیدارم چرا این مقاله تا این حد مرد بیمهری توضیح اکنون دیگر مقاله های 1964 حمیلدون مرد توجهی نیستند داستان بیت اولیه اولیه شناخت بعدی آنها در جای خود میتواند موضوع یک مطالعه کمی جالب باشد. یک مطالعه موردی درباره نقش یک مم در خزانه ممی. من رد پیش روی این مم را در پینوشت فصل دنبال نمودم. توضیح بعدی توضیح. فرض می‌کنیم صحبت از ژنهایی است که در خزانه ژنی کمیابند. این روش که فرض کنیم صحبت از ژنی که در جمعیت کمیاب است در کل کلکی است برای اینکه سنجش میزن خویشاوندی را ساده تر توضیح دهیم یکی از های اصلی همیلتون بود که نشان داد نتایج او صرف نظر از فراگیری یا کمیاب بودن جن مورد نظر صادق است از قرار معلوم این جنبه ای از آن نظریه است که درکش برای همه راحت نیست مسئله سنجش میزان خویشاوندی بسیاری از ما را به صورت زیر دچار اشتباه می کند. هر دو از یک گونه چه به یک تعلق داشته باشند چه نه. معمولا در بیش از 90 درصد جنها مشترکن. آن وقت باید دید وقتی ما از خویشاوندی یک دوم بین برادران یا یک هشتم بین اموزادگان صحبت می کنیم منظور چیست؟ پاسخ این است که برادران علاوه بر آن 90 درصد یا هرچه هست که در هر حال با هم شریکند، در یک دوم ژنها هم مانند همان برای همه اعضای یک گونه یک نوع خط مبنای خویشاوندی وجود دارد که در واقع در سطح تر از آن همه اعضای های دیگر شریکند. خط مبنا هر چه باشد ایسارگری را در افرادی انتظار داریم که میزان خویشاوندیشان بالاتر از خط مبنا باشد در چاپ نخست این کتاب من با استفاده از پیش کشیدن ژن‌های کمیاب از این مسئله تفره رفتم این قضیه تا حدی درست است ولی همه ماجرا نیست در مورد ژن خود همیلتون نوشته همانند از روی نصب اما چنانکه که آلن گرافن نشان داد این هم اشکال خودش را دارد نویسنده هستن وجود چنین مسئله‌ای را ابراز نکردند و خیلی راحت در صد مطلق ژن‌های مشترک را که یک اشتباه آشکار و 100 درصد از پیش کشیدن اینطور بیدقت صحبت کردن موجب سوء تفاهم زیادی شد برای مثال یک انسان شناس برجسته ضمن انتقاد شدید به زیست شناسی اجتماعی که در 1978 منتشر شد سعی کرد چنین استدلال کند که اگر به موضوع انتخاب خیشاوند اهمیت بدهیم باید انتظار این را داشته باشیم که همه ها نسبت به هم ایسارگر باشند چون همه در بیش از 99 درصد درصد ژنها با یکدیگر شریکند من در مقاله دوازده برداشت غلط از انتخاب خویشاوند که این در آن رتبه پنجم داشت پاسخ کوتاهی به این اشتباه دادم بد نیست به آن یازده برداشت غلط هم نگاهی بیاندازید آلنگرافن در مقاله خیشاوندی از دیدگاه هندسی چیزی را پیشنهاد می کند که شاید راه حل نهایی برای همه مسئله اندازهگیری خیشاوندی باشد. ولی من قصد ندارم آن اینجا شرط هم. او در یک مقاله دیگر انتخاب طبیعی، انتخاب خیشاوند و انتخاب گروه یک مسئله مهم و آشناتر یعنی کاربرد نابجا از مفهوم شایستگی فراگیری همیلتون را رو روشن می کند. همچنین روشهای درست و نادرست محاسبه هزینه ها و سودهای خیشاوندان ژنی را پیش روی میگذارد. توضیح عبارت ها؟ آرمادیلوها بد نیست وقتی کسی به آمریکای جنوبی میرود سری به آنها بزند. از پیش بی در جبهه آرمادیلوها هیچ گزارشی به دست ما نرسیده است اما چند واقعیت حیرت آور درباره گروه دیگری از حیوانات شبیه ساز شته داریم. از مدتها پیش می‌دنستان ها، مثلا مگس سبز، تولید مثلشان هم جنسی و هم غیر جنسی است اگر شما تودهی از شرطه ها را رو روی یک گیاه ببینید و به احتمال زیاد همه آنها اعضای شبیه ماده واحدی دارند در حالی که شطه‌هایی که روی گیاه بغلی هستند عضوهای شبیه دیگرند. بر اساس اصول نظری چنین وضعیتی برای تکامل ایسارگری انتقاب خیشاوان مناسب است اما هیچ مورد واقعی از ایثارگری ها دیده نشده بود تا اینکه در یک گونه ژاپنی از ها سربازان سفرون توسط شیگی یوگی آوگی در 1977 کشف شدند ولی دیگر فرصتی نبود که در چاپ اول این کتاب آورده شود بعد از آن آوکی آن پدیده را در چند گونه مختلف دیگر کشف کرد و شواهد خوبی به دست آورد از اینکه این پدیده حداقل چهار بار جداگانه در گروههای مختلف از ها تکامل یافته است کوتاه بگویم ماجرای آوکی از این قرار است که شته‌های سرباز از نظر ساختمان بدن طبقه متمایزی‌اند درست همانطور که طبقات حشرات اجتماعی سنتی مثلا مورچه‌ها چنین‌اند آنها کرم کرمحشرههاییاند که به بلوغ کامل نمیرسند و بنابراین سطرون هستند از نظر ظاهر یا از نظر رفتار به کرم های غیر سرباز که از نظر ژنی با آنها یکسانند شباهتی ندارند سربازها نوعا درشتتر از غیر سربازهایند پاهای جلوشان فوقالعاده بزرگ است که ظاهری شبیه روتیل به آنها میدهد های تیزی از سرشان بیرون زده است آنها از این سلاح برای جنگیدن و کشتن شکارگران احتمالی خود استفاده میکنند. اغلب در جریان این کار جان خود را از دست میدهند. اما اگر نمیرند هم باز درست این است که آنها را ایثارگر بدانیم چون تولید مثل کنند. در اینجا بر اساس ژن خودخواه موضوع از چه قرار است؟ اوکی دقیقا اشاره نمی کند به اینکه چه عاملی باعث می شود بعضی عقیم و بعضی افراد تولید های بالغ عادی باشند اما با اطمینان میتوانیم بگوییم باید پای یک تفاوت محیطی نه ژنی در میان باشد بدیهی است زیرا سربازان سطروند و های عادی روی یک گیاه از نظر ژنی یکسانند در هر صورت باید ژنهایی در گرایش به هر یک از این دو مسیر محیطی متفاوت نقش داشته باشند با اینکه بعضی از جنها در نهایت از بدن سربازان عقیم سردت میآورند و بنابراین منتقل نمیشون چرا انتخاب طبیعی آنها را بر نمیگزیند؟ به دلیلی است که با فداکاری آن سربازان نسخه هایی از همان ژن در بدن غیر سرباز تکثیر می شود؟ اصل زیر بنایی همان است که در همه حشرات اجتماعی فصل ده را ببینید بود جز این که در دیگر حشرات اجتماعی مثلا مرچه و مریانه، جنهای درون ایسارگر سترون فقط بر اساس احتمال آماری ممکن بود به نسخه های خود در تولید مز کننده غیر عقیم کمک کنند. در شطه ها برخوردار شدن از جن ایسارگری است نه آماری. زیرا شطه های سرباز همسانه های تولید مز خود هستند. به عبارتی، شرطه های آوکی واضحترین صورت واقعی از توان افکار همیل بنابراین آیا باید به شرطه ها اجازه عضویت در انجمن اختصاصی هشره های اجتماعی واقعی داده شود که به طور سنتی باشگاه مرچه ها، زنبور های اصل، زنبور های عادی و موریان هاست؟ هشر شناسان محافظکار ممکن است به دلایل مختلف علیه آنها رأی دهند. مثلا به این دلیل که آنها یک ملکه دراز عمر ندارند. علاوه بر آن، چون شدت ها یک شبیه ساز واقعی بیشتر از سلول های بدن ما اجتماعی نیستند. همه تنها یک حیوان هند که از آن گیاه تغذیه می کند. آن حیوان هم به طور اتفاقی بدنش را به شدت هایی که از نظر ظاهر جدا از همند تقسیم کرده است. طوری که بعضی نقش تخصصی دفاع را بر عهده دارند درست مثل های سفید در بدن انسان و بحث چنین ادامه مییابد که های اجتماعی واقعی گرچه بخشی از یک موجود زنده نیستند با هم همکاری می‌کنند، ولی های آوکی با هم همکاری می‌کنند چون به یک موجود زنده تعلق دارند من از این مسئله معمایی سر می آبرم. به نظرم همین اندازه که سر در بیاورم در مورچه ها، شته ها و سلول های انسان چه میگذرد، آن وقت مختاریم که به میل خود آنها را اجتماعی به حساب بیاوریم یا نیاوریم. نظر مرا بخواهید، من به دلایلی ترجیح میدهم شته های آوکی را حشری اجتماعی به شما رو بیاورم. نه بخشی از یک موجود زنده. شته ویژگی های تعیین کننده یک موجود زنده را دارد، ولی یک مشابه شته آن را ندارد. این استدلال در رخنمون گسترش یافته در فصلی به عنوان کشف دوباره موجود زنده همچنین در فصل جدید کتاب حاضرم با نام گستره وسیع ژن آمده است توضیح عبارت انتخاب خویشاوند مورد خاصی از انتخاب گروه نیست سردرگمی ناشی از تفاوت بین انتخاب گروه و انتخاب خیشاوند هنوز ادامه دارد. شاید شدیدترم شده باشد. من روی حرف خودم تاکید می کنم، مگر آنجا که با بی‌دقتی در انتخاب واژه نظر نادرست خودم را در بالای صفحه 102 چاپ این کتاب آورده‌ام. در بعد اصلی گفتم تو پرانتز و از محدود چیزهایی است که در این ویرایش عوض شده است. نقل قول از کتب قبلی ما فقط انتظار داریم اموزاده های نست دوم یک آن میزان ایسارگری را که نسبت به فرزندان یا به خواهر و برادر صورت میگیرد داشته باشند همونطور که سه آلتمن تذکر داده این یک اشتباه آشکار است نادرست است چون دلیلی که آوردم به ای که در آن وقت میخواستم بگویم بی بیربت است در اینجا مترجم گیومه رو که باز شده نوسته بنابرای مشخص نیست که پایان نقل قول کجاست. ادامه میدم؟ اگر یک حیوان ایسارگر یک کیک دارد که میخواهد به خیشاوند خود بدهد اصلا دلیلی وجود ندارد که به همه اقوام یک قاچ از آن برسد و نزدیکی نسبت اندازه قاچ را تعیین کند. این در واقع به پوچی منتهی می شود زیرا همه اعضای آن گونه حالا گونه های دیگر به کنار دست دستکم خیشاوند دور هستند و میتوانند ادعای دریافت یک تکه کوچک به دقت اندازه گرفته شده را داشته باشند برعکس اگر قوم و خیش نزدیکی در آن حلوش باشد اصلا لزومی ندارد که به فامیل دور دستم کیک برسد تحت تاثیر عوامل دیگر مثل قاعده برگشت های تقلیل یافته تمام کیک باید به نزدیکترین قوموخیشی که در دسترس است برسد. البته منظور من از این این بود که ما فقط برای نست دوم عموزادها انتظار برخوردی از ایسارگری را یک شانزدهم آن مقداری می دانیم که به فرزند یا خواهر یا برادر کسی می رسد. و این چیزیست که اکنون نیز به قوت خود باقی است. توزی بعدی در مورد عبارت او عمدن فرزندان را کنار میگذارد. آنها را خیشاوند محسوب نمی کند. توزی من اظهار امیدواری کردم که آ. اولسند تعریفش از انتخاب خیشاوند را در نوشته های بعدی تغییر دهد. آن را کند که فرزندان هم جزء خیشاوندان باشم خوشالم از گفتن اینکه در کتاب در باب طبیعت انسان او عبارت نابجای غیر از فرزندان حذف شده است. اومی افضایت گرس خیشاون طوری تعریف شده که فرزندان را شامل می شود. انتخاب انتقاب خیشاوند. معمولا فقط در صورتی به کار می رود که دست کم چند فامیل دیگر مثل خواهر برادر یا پدر و مادر را شامل شود. متاسفان این جمله در کاربرد معمول زیست صحیح شماده می شود، و به سراحت نشان میدهد که هنوز بسیاری از زیستشناسان درک درستی از اصل مطلب انتخاب خویشاوند ندارند هنوز به اشتباه آن را قوضی اضافه و مبهم بالای قوز انتخاب فرد میدانند ولی چنین نیست انتخاب خویشاوند پیامد فرض بنیادی نوداروینیزم است همانطور که شب پیامد روز است توضیح عبارت انجام چنین محاسب پیچیده در صفه 90ودشا تووزی متوالی دانشجویان آن هم نه فقط دانشجویان جوان به این توهم دامن زده که نظریه انتخاب خیشوان کار سخت محاسبه دور از واقعیتی را از حیوانات طلب می کند. کتاب استفاده و سوئ استفاده زیست شناسی نوشته انسانشناس اجتماعی برجسته مارشال سالینز، اگر به عنوان یک انتقاد تند نسبت به زیستشناسی اجتماعی مورد استقبال قرار نگرفته بود ممکن بود تا ابد در ابهام محترمانه‌ای باقی بماند نقل قول زیر در این بافت که آیا انتخاب خیشاوند در مورد انسان ها کارایی دارد خوبتر از آن است که بتوانیم آن را درست هم تلقی کنیم قول در حاشی لازم به است که مسائل معرفتی شناختی ناشی از عدم حمایت زبانی در ای آر به نسبت منجر به اشکالات جدی در نظریه انتقاب خیشاوند می شوند. کسر که پدیده نادری در زبانهای جهان است، در زبانهای هند اروپایی و در تمدن باستانی شرق دور و نزدیک وجود دارد، اما در زبانهای بشری به قول معروف ابتدایی اغلب وجود ندارد. شکارچیان و گردآورندگان معمولا نظام محاسبی فراتر از یک، دو، سه ندارند. من از اظهار نظر درباره این مسئله بزرگتر که حیوانت چگونه پی می که یک هشتم عموزاده من تلقی می شود یعنی آر خودداری می این اولین بار نیست که من این قطعه بسیار روشنگر را رو نقل می کنم و این بار هم پاسخ و نسبتاً تونت خود را به آن از دوازده برداشت غلط از انتقاب خیشاوند نقل می کنم نقل قول از پاسخ به عبارت بالا برای سالینز موجب تعصف است که تسلیم وسوسه خودداری از اظهار از نظر درباره چگونه پی بردن به آر شده است آره هم نسبت یک هشتم پوچی همان فکری که او میخواهد به تمسخور بگیرد باید زنگ هشتاری را در ذهن به صدا درآورد خانه صدف هلزون یک مارپیچ لوگاریتمی فوقالعاده شگفتانگیز است ولی هلزون جدول لگاریتمش را کجا میگذارد چطور آن را میخواند چشم هایش که از حمایت زبانی لازم برای محاسبه ام ذریع انکسار و نور برخوردار نیستند. گیاهان سبز به فرمول کرولوفیل چگونه پی می برند. حقیقت این است اگر شما به کالبوت شناسی، فیزیولوژی، یا تقریبا هر جنبه از زیست شناسی و نه فقط رفتار. به روش سالینز توجه کنید به همان مسئله ناموجود می رسید. توصیف رشد جنینی هر بخش کوچک از بدن یک حیوان یا گیاه به محاسبات پیچیده ای نیاز دارد ولی به این معنا نیست که آن حیوان یا گیاه خودش یک ریاضیدان باهوش است درخت های خیلی بلند اغلب پشت بندهای بزرگ بال مانندی دارند که از قاعده درخت رو به بالا دور تنه باز می شوند و از آن حمایت می کنند در اون هر گونه هرچه چه درخت بلندتر باشد آن پشت بند به نسبت بزرگتر است همه پذیرفتن که شکل و اندازه این پشتبند وضعیت حساب شده و مطلوبی را برای سرپا نگه داشتن درخت دارد ولی برای نشان دادن آن مهندسان باید محاسبات ریاضی پیچیده را انجام دهند هرگز به ذهن سالینز یا کس دیگری خطور نکرده است که نظریه زیربنای بنای ها را برای این اساس که درختها ها خبرگی لازم را برای محاسبات ریاضی ندارند مورد تردید قرار دهد پس چرا این مسئله در مورد خاص رفتار انتخاب خیشاوند مطرح می شود نباید به این دید باشد که یکی رفتار است و دیگری که شناسی زیرا نمونه های بسیاری از رفتارهای دیگر منظورم غیر از رفتار انتخاب خیشاوند است وجود دارد که سالینز آنها را به رضایت و بدون اظهار مخالفت معرفت شناسانه اش میپذیرد مثلا به تصویری که من در صفحه 146 از محاسبات پیچیده داشتم که هر کدوم از ما به نفی هنگام گرفتن توپی انجام میدهیم توجه کنید. واقعا جای تعجب است. آیا دانشمندان جامعه شناسی هستند که با نظریه انتقاب طبیعی در کل مشکل نداشته باشند ولی به دلایل عجیب و غریبی که شاید ریشه در تاریخ موضوعشان دارد ناامیدانه بکوشند تا چیز اشتباهی هر چیز. را مخصوصا در نظریه انتخاب خیشاوند بیابند در توضیح این عبارت که باید ببینیم حیوانات در محل چگونه برآورد می که خیشان نزدیکشان چه کسانی هستند ما می‌دانیم خویشان خیشان نزدیک ما چه کسانی هستند زیرا این را به ما گفتند توضیح از زمان نوشتن این کتاب تا حال کل بحث شناخت خیشاوند بالا گرفته است به نظر مثل حیوانات از جمله خود ما از روی شامه توانایی‌های ظریفی برای تشخیص افراد خودی از غیر خودی داریم کتاب جدید شناخت خیشاوند در حیوانات خلاصی همه اطلاعاتی که تاکنون در این باره وجود دارد فصلی که پاملا بیلز درباره انسان نوشته نشان میدهد که باید به عبارت ما میدانیم خیشان نزدیک ما چه کسانی هستند زیرا این را به ما گفته‌اند اضافه کنیم که دستکم شواهد ریز و ظریفی نشان می دهد که ما می توانیم از سر های غیر کلامی مانند بوی عرق تن اقوام استفاده کنیم. برای من در نقل قولی که او با آن شروع می کند کل موضوع خلاصه شده است. نقل قولینه همه دوستان خوب را می توان از شمیم ایثارشان شناخت. ای ای Comingings. شاید به خاطر چیزهایی غیر از ایسارگری لازم باشد اقوام یکدیگر را بشناسند. شاید بخواهند بین باخی شامیزی و برون آنطور که در یادداشت‌های بعدی خواهیم دید تعادلی برقرار کنند. توضیح اثر زیاناور ژنهای مغلوب که خود را در ازدواج‌های فامیلی نشان می دهر. تو پرانتز به دلیلی بسیاری از انسان شناسان از این توضیح خوششان نمی آید. جن کشنده، جنیست که دارنده خود را می خوشد. یک ژن کشنده مغلوب مثل هر ژن مغلوب دیگر، تا میزان آن دو برابر نشود، اثر خود را نشان نمی دهد. کشنده مغلوب در خزانی جنی باقی میمانند، زیرا بیشتر افراد حامل آنها فقط یک نسخه از آن را در خود دارند و بنابراین از تأثیر آن در امانند. هر کشنده خاصی نادر است، زیرا اگر تعداد آنطوری زیاد شود که به نسخه هایی از خود بر بخورد، حامل را خواهد کشت. با وجود این، انواع کشنده ها وجود دارند و باز این احتمال هست که همه ما را مبتلا کنند، وردهایی که از تعداد انواع مختلف آن در خزانه ژنی انسان شده مختلف است در بعضی منابع به دو کشنده بهطور متوسط در هر انسان اشاره شده است. اگر یک نر اتفاقی با یک مادی اتفاقی جفت شود، احتمال بیشتر است که کشنده آن نر با کشنده آن ماده یکی نباشد و بچه های آنها دچار گرفتاری نشوند اما اگر برادری با خواهرش، یا پدری با دخترش از گیری کند و از فرق میکند هر قدر ژن کشنده من در کل جمعیت کمیابه و هر قدر ژن کشنده خواهرم در جمعیت نادر باشد در حد نگران کننده این احتمال وجود دارد که کشنده من و او یکسان باشم اگر اساک کتاب کنی معلوم می شود در صورتی که من با خواهرم جفت شوم به ازای هر ژن کشنده معلومی که من دارم از هر هشت بچه‌ای که تولید شود یکی مرده به دنیا خواهد آمد یا در بچه که خواهد مرد از قضا از نظر ژنی، مردن در کودکی کشنده از مردن در هنگام تولد است یک بچهی مردزاد زیاد وقت و انرژی والدین خود را هدر نمیدهد. اما هر طور که به قضیه نگاه کنیم اینطور نیست که خیشا آمیزی خسران مختصری داشته باشد فاجعه بلقوه است انتخاب برای پرهیز از آمیزش با خیشان مانند دیگر فشارهای سنجیده در طبیعت باید از توان بالایی برخوردار باشد. انسان که با این توضیح داروینی درباره اعتراض از زنای با مهارم مخالفم، شاید نمی‌دانند با چه مبحث داروینی توانی مخالفت می‌کنند. بعضی از استدلال‌های آنها به قدری ضعیف است که به نظر نمی نمی‌رسد لازم باشد پاسخی بر آن داده شود. مثلا آنها اغلب میگویند اگر واقعا انتخاب داروینی در ما به صورت غریزی دوری از آمیختن باخیشان سرشتی بود دیگر لزومی نداشت که آن را نهی کنند علت این حرام دانستن این است که در مردم میل به آمیزش با مهارم وجود دارد بنابراین نمیتواند تواند یک قاعده زیست شناختی باشد بلکه یک دستور کاملا اجتماعی است این طرز برخورد تا حدی مثل این است که بگوییم فرمان اتومبیل قفل لازم ندارد چون درها قفل دارند. پس قفل فرمان وسیله ضد سرقت نیست، فقط جنبه آینی خاص دارد انسان شناسان به این گرایش دارند که تأکید کنند فرهنگ‌های مختلف محرمات خاص خود را دارند. یعنی هر کدام تعریف متفاوتی از خیشاوندی دارند. ظاهرا آنها فکر می کنند این نگرش می توانند از شدت توجه نظریه داروینی به احتراز از خیش آمیزی بکاهد. اگر اینطور باشد پس می توان گفت که میل جنسی هم نمی تواند یک سازگاری داروینی باشد چون فرهنگ مختلف وضعیت های متفاوتی را در جفتگیری ترجیح می دهند. از نظر من کاملا پذیرفتنی است که اجتناب از آمیزش با خیش در انسانها نه کمتر از حیوانات دیگر. پیامد انتخاب پرقدرت داروینی است. نه فقط جفتگیری با آنها که از نظر ژنی به فرد بسیار می میتواند بسیار بد باشد بلکه زاداودی با آنها که بسیار دورند نیز میتواند بسیار بد باشد و علتش ناسازگار بودن ژنهایی از رگه های متفاوت است. نمیتوان آن حد وسط آرمانی را دقیقا پیشبینی کرد. آیا میتوان با اموزاده جفت شد با نسل دوم یا سوم بعد از امو چطور پاتریک باشن کوشید از بلدرچین ژاپنی بپرسد در این طیف کجا را ترجیح میدهد؟ در یک تشکیلات آزمایشگاهی با نام دستگاه آمستردام شرایطی فراهم کردند که این پرنده ها بتوانند از میان اعضای جنس مخالف خود که پشت ویترین کوچکی ردیف شده بودند جفت انتخاب کنند آنها اموزاده ها را به خواهر برادر یا به پرندگان بینسبت با خود ترجیح دادند. آزمایش های دیگر حاکی از این بود که بلدرشین های کوچک متوجه ویژگی های جوجه های همزاد خود می شوند و بعد در زندگی خود ترجیح می دهند شدیک جنسیشان تقریبا شبیه آن همزادان ولی نه کاملا شبیه آنها باشد. بنابراین به نظر میرسد، بلدرچین با عدم تمایل ذاتی به آنها که با او بزرگ شدهاند از جفت شدن به آنها میپریزد. حیوانات دیگر با رعایت قواعد اجتماعی، قواعدی که اجتماع را به پراکنده شدن وامی دارد، از این کار باز داشته میشوند. برای مثال، شیرهای نوجوان از گلی خانوادگی آنچه که فقط ماده های خیشاوند در دست رسند، بیرون را نمیشوند. فقط در صورتی زادآوری می کنند که گله دیگری را تصاحب کرده باشند. در جمعیت شامپانزه و گوریل ها ماده های جوان سعی می در یک گروه دیگر دنبال جفتگیری باشند. این دو الگوی متفرق شدن و همچنین روش بلدرچین ها را می توان در میان فرهنگ مختلف گونه خودمان نیز دید بعدی، از آنجا که این خطر وجود ندارد که اعضای گونه خودی به صورت توفیلی مزاحم شود. توضیح اعتمالا در مورد بیشتر گون های پرنده ها و از چنین است. با وجود این نباید از دیدن اینکه بعضی از پرنده ها تفعلی لانه همگونه خود شوند تعجب کنیم. در واقع این پدیده در تعداد روبه افزایشی از گونه ها دیده می شود. مخصوصاً در این زمان که با روش های مولکولی می توان تشخیص داد کی به کی تعلق دارد. در حقیقت نظریه ژن خودخوا شاید بیش از آنچه ما تا کنون میپنداشtim انتظار وقوع آن را دارد. توضیح انتخاب خیشاوند در شیرها. سه پارکر و آپوسی پوسی تاکید برترام را مبنی بر اینکه انتخاب خیشاوند محرک اصلی همکاری در شیر به چالش کشیدند. آنها ادعا می دو شیر ندی که درون بسیاری از گله هستند با هم نسبتی ندارند. پارکر و پوسی پیشنهاد می کنند ایسارگری دو جانبه دست مانند انتخاب خیشاوند می یک توضیح احتمالی برای همکاری بین شیرها باشد. شاید هر دو طرف راست می‌گویند. فصل دوازده تاکید می کند همکاری دو جانبی این به آن در فقط در صورتی پیدا می شود که از ابتدا بین طرف این یک حد نصاب تعیین کننده ای از معامله به مث وجود داشته باشد. وجود آن تضمین می کند که شریک احتمالی آینده به احتمال زیاد متقابلا همکاری می کند. به نظر می رسد آشکار ترین طریق برای پیش آمدن چنین حالتی خویشاوندی باشد. خیشاوندان به طور طبیعی به هم شبیه هم بنابراین حتی اگر در جمعیت آن میزان تعیین کننده چندان برقرار نباشد باز ممکن است درون خانواده وس چنین باشد شاید بنای همکاری در شیرها از طریق اثر خیشاوند پیشنهاد برتروم گذاشته شده است و شرایط لازم را برای انتخاب همکاری دو جانبه فراهم آورده باشد این اختلاف نظر در مورد شیرها را فقط واقعیت میتواند فرو بنشاند ولی مثل همیشه واقعیت فقط از یک مورد خاص خبر می‌دهد نه از یک نظریه فراگیر توضیح عبارت اگر سی همراه دوغلی من باشد اکنون کاملا معلوم شده است که دوغلی همزاد یک فرد بر اساس اصول نظری به اندازه خود فرد برای او دارای ارزش است البته اگر واقعا دو قلوهای یکسان باشند. چیزی که خیلی خوب درک نشده است این است که همین قضیه در مورد یک مادر تک همسر واقعی هم صادق است اگر شما یقین داشته باشید که مادرتان به بچه آوردن از پدرتان ادامه می دهد و فقط از پدرتان بچه می آورد برای شما مادرتان از نظر جنی همانقدر ارزشمند است که همزاد دو یکسان شما یا خودتان اگر خودتان رو یک دستگاه تولید مثل بچه در نظر بگیرید آنگاه مادرتان می‌شود یک دستگاه تولید خواهر برادر تنی و خواهر برادرهای تنی شما برای شما به اندازه بچه های خودتان ارزش دارند البته در این بحث انواع ملاحظات اجتماعی رو ندیده میگیریم مثلا مادرتان از شما بزرگتر است ولی اینکه این, این وضع او را گزینه مناسب یا نامناسبتری ترین نسبت به شما برای تولید مثل آینده کند به شرایط ویژه بستگی دارد. نمیتوان یک قاعده کلی ارائه داد. در این بحث فرض بر این است که میتوان به مادر خود اطمینان کرد که فقط به بچه آوردن از پدر خود فرد ادامه میدهد نه از تا چه حد از این نظر بتوان به او اعتماد کرد بستگی به نظام جفتگیری هر گونه دارد. اگر شما عضو ای باشید که قاعدتا بیبند و بار است آشکار است که نمیتوانید مطمئن باشید که بچه مادرتان خواهر یا برادر تنیتان باشد حتی در شرایط آرمانی تکمسری در وضعیتی اجتنابناپذیر ممکن است مادرتان گزینهٔ بدتری از خودتان شود ممکن است پدرتان بمیرد اگر پدر مرده باشد هر قدر هم که مادر بخواهد نمیتوان این انتظار را داشت که بچهای از او به دنیا بیاورد غیر از این است اما در حقیقت شرایطی که در آن چیزی بتواند رخ دهد یقینا باید برای نظریه انتخاب خیشاوند بسیار جالب باشد ما به با عنوان پستاندار معمولا فکر می‌کنیم زایمان باید مدت معینی بعد از جوفگیری و در فاصله زمانی نسبتا کوتاهی به آن رخ دهد انسان مذکر ممکن است بعد از مرگش بچه دار شود اما نه بعد از اینکه نه ماه از زمان مرگش گذشته باشد مگر به کمک فریز کردن اسپرم در بانک اما در گروهی از حشرات مادر اسپرم برای تمام عمر درون حشره ذخیره می شود و بعد به تدریج یکی یکی آنها را برای باربر کردن توخم ها بیرون می اندازد و این کار اغلب تا مدت بعد از مرگ جفت او ادامه می آبد. اگر شما عضو یک گونه از این چنینی باشید، بالقوه می توانید مطمئن باشید که مادرتان یک گزینه ژنی مناسب است. مورچه ماده فقط در اوایل زندگیش یک پرواز برای جفتگیری انجام میدهد بعد از آن بالهایش را از دست می دهد و دیگر جفتگیری نمی کند البته درست است که در بسیاری از گونه های ماده هین پرواز برای جفتگیری با نرهای متعددی میآ آمیزد. اما اگر شما به طور اتفاقی به یکی از آن گونه های واقعا تک همسر تعلق داشته باشید واقعا می توانید مادرتان را به اندازه خودتان از نظر ژنی گزینه مناسبی در نظر بگیرید نکته مهم این است که اگر یک مورچه جوان نپستاندار جوان باشید مرده بودن پدر اهمیتی نخواهد داشت در واقع او یقینا مرده است می تواند مطمئن باشید که اسپرم پدرتان بعد از او زنده است و مادرتان می تواند از آن خواهر و برادر تنی برایتان بسازد. نتیجه اینکه اگر منشأ تکاملی نگهداری از خواهر برادر برای ما جالب باشد باید بگونه ای که در آن ماده ها اسپرم را برای تمام عمر ذخیره می توجه خاص نشان دهیم. چنانکه در فصل ده بحث می شود در مورچه زنبور اصل از معمولی یک ویژگی ژنی خاص یعنی تکلاد و دولاد بودن وجود دارد که احتمالاً سبب می شود بسیار اجتماعی شوند چیزی که اینجا مورد نظر من است این است که تکلاد دولادی بودن تنها عامل ساز نیست احتمالاً این شیوه ذخیره کردن اسپرم برای همه عمر هم به همان اندازه اهمیت دارد و در شرایط آرمانی می تواند یک مادر را به اندازه یک دوقلوی همزاد از نظر ژنی ارزشمند و به همان اندازه شایسته دریافت کمک های ایثارگرانه کند. توضیح عبارت انسان شناسان اجتماعی شاید چیزهای جالبی برای گفتن داشته باشند. توضیح این عبارت حالا باعث شرمندگی هم است. بعدها فهمیدم انسان شناسان اجتماعی نه فقط درباره اثر دایی چیزهایی برای گفتن دارند، بلکه بسیاری از آنها به چیزی غیر از آن پرداختن. تأثیری که من پیشبینی کردم یک واقعیت تجربی شناخته شده در تعداد زیادی از فرهنگ است که دهه هاست برای مردم شناسان شناخته شده علاوه وقتی من این فرضیه خاص را مطرح کردم که در جامعه هایی که میزان بیوفایی در ازدواج بالاست دایی معمولا ایسارگرد از پدر است چون از نسبت خود با آن بچه بیشتر میتواند مطمئن باشد متاسفانه این واقعیت را ندیده گرفتم که قبلا ریچارد الکساندر هم به این موضوع اشاره کرده بود در چاپهای بعدی ویرایش اولین کتاب اقرار به این موضوع را در پانوشتی اضافه کردم این فرزیه توسط خود الکساندر و کسان دیگر با استفاده از روش کیفی کارهای مردم شناسانه مورد بررسی قرار گرفته و نتیجه موافق داده است پاید.